الحمد لله بی رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا رسول الله و آله طیقین و طافرین المعسومین و لهم خدایمت و اللهم اکرانا جمیعا من سهلین و الحمد رحمتک یا رحمت راحمین اصول مسئلهی که بعد مرموشه نسبتاً به طول و تفصیل بیشتری بارد شده مسئله تنجیم و صحبت شد که مسئله تنجیم و حکم در نجوم و حکم در طبق نجوم یک مقداریش واقعیت بسیار ملموس در زندگی افراد داره به خاطر که با حرکت خورشید و حرکت ماه و مسئله جل با حرکت ماه و خرشیدم که کسول و به اصطلاح به حضور خدمتونی که سبزیجاد و گیاه و حیوان و زندگی و تمام روی این حرکت خرشی به اصلاح حرکت نجوم بلکه این رو به افلاک به سبعه نسبت میدادم که اعتقادشون این بود که تأثیر این افلاک سبعه در روی زمین در چهار انصار اساسی که هست که عبارت از خاک چه ترتیب داره اسقلش اون و این زیرش اون خاک بالاش آب همونطوری که ما میبینیم کره زمینه برگوش کره آبه علاوه بر خودشون این هر دو کره تجاریس داره در کره هوا اون هم کائناتای پیدا میکنه به خاطر کوها و بعد هم کره آتش این تصور قدیم این بود از تاثیر اون آبا اثره که افلات باشه در این عناصر یا به اصطلاح قدیم آخشیج آخشیج های چهارگانه عناصر اربعه باشه موالید ثلاثه بقوله قولشون که عباد از نبات و جماد و حیوان باشه به وجود میاد خب تاثیر نجوم اجمالا تو زندگی انسان قطعی و واقعی در خود قرآن کریم هم راجع به منطقه‌ای که فلسفه‌ها در بهسا فرهیغه قدیم هم جزء مناطقی است که منجم به تمام معانیش حتی برای سحر و جادو و کاهانی و به اصطلاح تلسمات و اینها هم رواج داشت بابه در قصده اصل ابراهیم فرن نرداره نرداره هم تن نجوم فقاله علمی سقیمون قدر اصل ریشه های بسیار قدیمی داره در آیات مباره که به او اشارت داره که باب، بابه یکی از تمدن های نجومی و مربوط به علم حیعت چین هست هند هست یونان هست نه هست یونان مفتان در این قص مثل هست که در این خیلی و بادل و این مراکز مهم تمدن نجومی که تاریخ چند هزار ساله در روی, روی پره زمین داره حالا این که به ما کار این مبحث مبحث بسیار لطیفیه روایاتی از پیغانبر اکر از بقیه همه نرو شده و وقت این روایات مخصوصا روایات بعدی که آمده بعضیاش مشعره به این که اصل مطلب درسته مثلا اعتقاداتش باطله یک مقداری کلمات و مخصوصا از وقتی که مرحوم سید مرتضی رحمت الله و بعد مرحوم کراچی مرحوم سید از بر بحثی داره که مفصل داره به اسم لعصم نوشون ایشون تقریبا متشدده که جای نیست بعضها مرحوم سید مرتضاوست من ورود حواسم خیلی عجیب فارسی ترجل سر سقوط از ترجل محمود اسم کتاب تو اشتباه برای من پیشو خدام متعال است ترجمه محمود دارم هر این کتاب نوشتم. ان فرج الماحمود صد در ترجمه الماحمود مرحوم سید تابوس این کتاب رو درباره علم نجوم نوشته. علی اعلی کردن ان خیلی زحمت کشیده. یه مقدار مقاله بشان ان شاءالله عرض می‌کنم که قابل مناقشه است که ان شاءالله مناقشه نش در خلال مسائل روشن بشه. یعنی این روشی رو که از بزرگان داشتم ما رو, رو روش بیشتر کار می‌کنیم نه روی شخص افراد. دیگه خالی نهاییت مخصوصا بعد از شرایط این دیگه وارد بحث مکاسه و محرمه شد و لذا شما بیشتر این روز رو از بعد از شرایط می‌بینید مثلا شیخ صدوق نداریم با این یا توفیق و رضا ما نداریم طنجیم ما نداریم اما از بعد از شرایط دیگه این بحث بیشتر شد محقق محفظ... از محقق شرایط بعد علامه در کتب خودش بعد شو و دیگه خواهی نخوایی مخصوصا به خاطر اینکه این همیشه همین مشکل داره یه چیزهایی که اصن علاقه بش دارن به واسطه علما هست و شبیه اونم تو روایات نه شده دیگه همیشه محل توجیهه مثل شعر که مثلا در روایات نهی شریچ شده یا در خودشون ذوق شعرن شعرن گفته از دوران مثلا از عرفا هستن یه سعی کردن به آیات شعر و واياته که در شعره مثلا یه توجیهش بکنن این نجوم هم همینطوره می‌یاد هم بده بالا شعر یه معنی چون خوده. اینی که خودشه اینی که بحث اومده که اینو کدوم قسمتش حرامه کدوم قسمتش حرام نیست مرحوم شیخ بحثی که دارن انصاف قصه از دو زاویه است یک ازه بحثش مربوطه به علمه که حالا فرسن با قطع نظر از دین این احکامی که در موضوع مطالع و مالع و, و اینجور چیز هست آیا درسته یا درست نیست آیا این دائم المطابقه است یا نه اکثری قالب المطابقه است یا نه حتی واقعی میشه واقعی نمیشه اینطور نیست که اغلب باشه. یه بحث اینه که خب این بحث از مکاسب خارجی بحث علمی نیست با ذره به نیست مشو جاش از جنس نباید هم میشون باید این بحث بشه یه بحث اینه که چه مقدار از این علم نجوم و این دانشی که مجموعه به علم نجوم و هیئت و اینا هست چه مقدار از اینها شرعی یعنی با شرع منافات نذره من تصدی گاز علوم تصدی اسلامیش میذارم یعنی اقتصاد اسلامی نجوم اسلامی به اسلام خب بیرم بحثی داره که ما اصلا نجوم اسلامی داریم اصلا نجوم در دائره علم با پسند اسلامی درست میاد اصلا علم اقتصاد علم اقتصاد معین ایست بعضی با که ما علم اقتصاد اسلامی اصلا نداریم اصلا ما در اسلام چیزی به نام علم اقتصاد نداریم بعضی از برنامه های اقتصادی داریم اما علم اقتصاد نداریم عدی sec different توجیح بکنره که مثلا فرضیه مثلا اگر این طور بود اگر نظام بانکی نبود اون بود اون طور اونطوری میشد مثلا جامعه به رشد این در تجزیه نیست با اگر مراد ما یعنی همون برنامه های اسلامی رو پیاده بکنیم به صورت اگر در بعد از اون در کتابشون نوشتن به اختراض. من اعتراض کردم اصلا اون آقاوم که علم درست کردم می بگم فرد علم نیست این اشتباه نشیده اعتراض علمی اعتراض علم نیست اصلا مثلاً اصل مطلب اینه که اعتراض علم نیست. اینکه ما فرض بکنیم اگر این توچل اون طور تو میشه این علم بشه این علم میشه فرض حدا یه حفی نداره علم اون است که قابل به حساب انتقال باشه قابل تجربه باشه قابل پیاده شدن باشه قابل کم باشه نتایج منموز بده اون بحثشون اینه نه اینکه پیش این فرض بکنیم اگر فرض بکنیم در جامعه اقتصاد آزاد باشه نظام بانکی هم باشه من سود نرخ شود این تور باشه مثلا رش فلانم این تور باشه فلانم اونطور باشه کذا این تور باشه فرض که مثلا نجاساتم فروشته رو فلان فلان نمیشه رباح نمیشه شار نمیشه این مثلا رش این جابر مثلا 15 در اینها چون به صورت اگه اینا علم نمیدونن این نجوم اسلامی و از قبیله حالا فرض من وارد این بحث می خوام بشم مرحوم شیخ اگه دقت بفرمایید یه مقدار بحث ایشون اینه که اینها درست نیست چی نفشه مثلا اخبارات درست نیست اکثری نیز میمیدونم قانب نیست. خب یک بخشیز علمی یک ذوابط علمی خودش داره این از محدوده مردم شیخ و ما و مقاسب هم خارجی بخش دومی که به ما مربوطه اینه که اساس کار چه مقدار از اون مجموعی که از زمان پیغمبر قبل از پیغمبر الائیوم نهاده حالا در این مجموعه بوده ما بین نجوم بوده ما بین به حساب مغیبات بوده ما بینه امور متعطاله بوده ما بینه اخبارات بوده ما بینه اعتقادات بوده خیلی از این منجمین که فلاسفه در اونها هستن قائل به قدم و بوده. بودن بحث هر این قسمت های اقائدیه و این بحث فقیه ماست چه مقدار از این اقائد باطل حرام کفره چه مقدارش کفر نیست؟ مناسب بود مرهمی شیخ از این زاویه بارد بحث میشوده. حالا می می این یکی صرفاً فیزیک میکنه. خلاصاً فیزیک کننده که کفر بین اما اگر فیزیک کن و قائل شد که ماده قدیمه ازلیه، اولیه، خب این این مشکل پیدا میکنه. ولی فیزیک کننده که مشکل پیدا میکنه. با ولیم خودی که در فیزیک از آل ماده لا تکنولوژی نه به وجود ندارد نشون میره ازلی وارد. این مشکلتره یک به اصطلاح علم خاصشه. و الا بحث فیزیکی خودش بی مشکل این لذا و مخصوصا که در این مسئله یک طرف قضیه مثل مرحوم سید مرزا که ندای عبارت ایشان تنده یک طرف قضیه هم مثل مرحوم سید ابن طاوز رحمه الله که تمایلاتی دارن خب اینم از این طرف وقت انصاف قضیه حق در مقام اینه که باید در این مسئله با فارغ این حرفا رگایاث و ادله رو نگاه کرد، تحلیل کرد، تحلیل تاریخی داد، تبیینش که از واضح چیه؟ از اون مقدارم خب با یک اصول احوال داریم که به اصول خودمون و سر معتقد بشیم که اینها درسته یعنی جزء موجب کفر میشه یا نمیشه. اما حالا میشه، بحث یعنی همین که کفر، کف کفرش کنه. تنجیم به عنوان تنجیم حکم فدایی میکنه. ببینیم این منجم چی قاعده؟ چی کار بکنه؟ چی داره اونیه؟ این بحث این بشته اون وقت در میان اخباری های ما علمای اخباری ما حالا با از گفت تکبیل بس مثل مرحوم صاحب وسائل کمی تنده مرحوم صاحب وسائل ایشون هایون اگر خواستن نگاه یه هاشی مفصلی مرحوم صاحب وسائل دارن. ایشون در وسائلشون ما از اول روایت بخونید چند روزی تو روایت باشیم بعد برگردید به کلمات رو بعد به صحبت های شده، ایشون باب 24 از ابواب ما اقتصب و رو باب تعلیم نجوم قرار ده ایشون روشن ادم و جواز تعلیم نجوم عنوان باب کردن ادم و جواز تعلیم نجوم وله عمل به ها اما نظر در نجوم رو و حکم نظر من ارز کنم صحابه سات خیلی دقیقا نظره اون جایی رو که عنوان با قرار میده حکم میکنه قبول داره اگر مثلا ربالات متعارضه این جایی تعدیل به حکم میکنه بینید عدم جواز تعلوم نجوم و عدم جواز عمل به نجوم بلکه حکم انداز. از اصلا نظر در نجوم اون کار روی به این ایشون میگه به حکم آیا نظر در نجوم جایز یا جایز نیست در بال نظر گفت حکم ترهید داشته اون تا فتفا داره خب این سوال اینه این نجومی که احرامه چیه؟ این نجومی که فعلومش احرامه؟ علم جواز دقیقه فرموزید؟ این بحثی که شده اینه البته بحث الان ما تو مکاسر از دابیه پول و اجراتی را حساب میکنیم اما چون بنایه شهر شده در قسم چهارو اعمالی که پی نفسه ها محرمت بیان بکنه سوال اینه اونی که پی نفسه محرمه چیه؟ سال و سالیف همونه که فی نفس محرمه تعلام نجوم حرامه اموده قفل کنید حیفش حرام و عملش هم حرام این عنوان با یه هاشیه داره ایشون در این جا که الان بعد میخونم آخرش آخرشم بعد از حدیث دوازده هم باز یک اقمولو داره مثلا قدم فی آداب سفر محیظه لعلاعظم جواز عمل به نجوم ولی عمل به احراق کتبها ها یه تون رفته و خوده بنجی هم بود سوزن مثلا و ازنه جواز تعلم الا ما يحثى في بر و بحث مثل خطنامه و این چیزها و یه اعتماد دا له علی ذلک و لا معارضه له سری ایشون کلا در بعضی از روایات که ظاهر ایشان نداره توجیه فرمودن این را به چون بعضی خود در عبارات ایشان بعد توجیه میدن اما یه تعلیقی هم ایشان دارن چون اگه معنایش رو در در تعلیقشون فرمه کمتر علماء اونا به تحریب تعلوم علم نجوم این کاری که الان شیخ مخارب بکنید در حقیقت اینه ما تو مطابق که این تحقیق بکنید آیا این مطابق ثابت تعلوم علم نجوم حرامه ولعمل به و سر رفو به کفر منع سبز تأثیر نجوم، اون مدخلیت آخر تأثیر و ذکر وان بوصله ذلیکن ضروریات دین گفت صاحب دی و نقلوا علی اجماع علی ذاله البته این تندی هایی که ایشون نظم ها عمدش فراهم کرده سال سید مرتضیه است विशेष و لذا داره ملصر ره به ما ذکرنا شیخ مفید حالا من اباض شیرمردی ندیدم کجای مقدمه مگه رساله ایشون باشه در مورد اینا نگم لن مرتضیه فی قرره رد دوره این غوره رو هم بربشتن توی رسالیشون چاپ کردن و شیخ و شهیدی قبائده درسته عبارتی شیخ شهیدین شهید ها رو در مکاسد میازه شیخ آیا اونجا رو شیخ میخونید اشاره میخونید و دروسی اما دقت بکنید تمام بعده مثل صدوق و فقه و رضا و اینها ندارید تمام بعده ولی علامه فر تذکره و المنتها و القبائد و تحری و شیخ علی فی شعر مراد ایشان از شیخ علی که همشهری ایشون هم هست محقق کرکیشون هر از لبنان هستن هر دو هستن جبل آمری هستند و شیخ علی پی شرح قواه مراد ایشان محققه کرکی این عباده شرح قواه هم بود که شیخ انصاری اول تنجیم و بود عبارت از محقق کرکی جامور مخاصد و شهید و سالی پی شرح شرایع که عبارت از کتاب مسالک باشه و معتبر بر المعتبر و این کاش اول میاد کلاشتی با سهل مرتضاست اینا قدیم هستند. فی کنز الفبائه و غیره ولا یبهرمن هم مخالفون فی زالک علا ما یهدارونی این از مخاصم خدمت ارز بکنم این در میان اخباری های مثلا متاخره ما که نیاز ده این شدت این طرف در مقابل صاحب بها این هم اخباری اما این از اون طرف من قرارا عرض کردم خود مرحوم صاحب بهار منجمه من خود صاحب بهار منجمه استخراج از نجوم داره. و توجه هم نکرد خیلی ای بواسطه ایشان در بواسطه نجومی خیلی نافعه فوق العاده ایشون از اذكرم یه چند دفعه میگم در بحث صلات ظم در بحث صلات اوقات مثلا به افق اصفهان که اون وقت حالا پایتخت بود و زمان صفوی از خودش هم بوده کل سال رو استخداش کرده برای اوقات شرعی ظهر به افق اطفاق هم برای سال یعنی پونزه فروردین و آخر فروردی پونزه قردی به هیچ وقت که مثلا زبار شمس در ساعت پلان یک قدم در ساعت پلان دو قدر که بسا در ساعت که زران میگفتن چهار قدر در ساعت پلان هفت قدم همه رو نمیشه با ساعت غروبی زده با ساعت غروبی زیده همان تو ساعت غروبی داده. با ساعت غروبی این در نزدیک 300 سیصد سال قبل تمام رو به افق ثهان استخراج کرده خود ایشان. و از که از یک تحقیل بسیار خوبی هم رجی به ننس داره که واقعا برای من هم همین جای تعجربه نه مرحوم س جوواره رو اشاره داره که خیلی قبل از ساف جا نه آ حکی در مست نه مرحوم اون اسخواز تو بحه، نسل نگار بشه و غیر از تو مباحث نوروز غیر نوروز انصافا مرحوم مجلسی رحم الله تو مسائل نجومیش موثر مثلا تو بخش طب ایشان موثر نیست کاملا واضحه که ایشون به طب قدیم آشنا نبودن اما مسائل نجوم رو خوب واره مثلا که ایشون یک بخش از بهاء رو به عنوان از سماور عالم قرار دادن که خالی نپاره که بخش از سماور عالم موابس النجوم و هیات رو مفرح کردن از این جدی که الان دستورد هر شما میدونین که این سجلدش به عنوان فهرست بعد این شمارش 55 دادن بعد 58 دادن این شماره که من دارم 58 هست در این جلد 58 که اول جلد اسماء ولعالمه ایشون باب شماره بابش هم باب دهم، باب علم النجوم برای عمل به و حال المنجمین اون چون که بر او معاصر ایشان چون با صاحب اثر معاصر دیگه به اصطلاح اجازه مددجه به بولهایون که مرحوم بهار به ایشان اجازه داده مرحوم را عاملیان به مرحوم صاحب بهار هر دو همدیگه اجازه دادن به قول اصطلاح علما حدیث مددجه اجازهش به نحو تبدی تدویج اجازه داده. از صفحه 217 خوب مفیده مراجعه و فقط بخش نجومش تا بخشی تا صفحه 330 و شش این بحث ال تعلم نجوم و و مقدار زیادی که از این کتاب ولی ما مخاطب این توضیح بدن ایشون مثلا رمز داده براش ان نجوم شماره ان نجوم از کتاب حسابات نجوم هم همون فرج الماحوم سید مرتضی فاضل سید رضیئه سید مثلا حسین طابو رضی الدین سید ابن طابوسی ایشون نگیشه ان نجوم ان نجوم ان نجوم بیچنم در هاشش استخراج نکرده زارم متفد نشده مراد از کلمه انجوم ان در کتاب به ها فرج المهموم سیده تاووسه دقیقا ترموزی روایات فرج المهموم رو هم در این کتاب مورده و از اجایب اینه که مرهوم شیط هون اصلا از سیده تاووس در این مسئله روایت نگورده شب کتاب در سیده تاووس هم برد که مرحوم شیخ حافظ از یک طرف و مرحوم شیخوها، ازش شیخوها در باب نماز قضا ازمیه، در کتاب وسال، در باب سالات، امده، بلکه ترجمه کنم همه ی رواجی که او در قیاس سلطان الوارای مرحوم سیدم تابوس سید تابوس کتابی داره در قضا از سالات ازمیه که این مجموعه اصلا از هرمان ندارم، انخراز زیاد داره که کی کی داره زیاد، احادیث بنت داره قیاس و سلطان الوارال سکان خراب. سکان سرای این مورده ها کتایی در قرد ساکنه قیاس و سلطان در حال سکانه ماشاءالله مرموم سال و سال احادیسی ایشان در وجه استخارش کرده اینجا اصلا تو وسائل من یک شرح تاریخی خدمتتون قبل میگو باید مسادر بشین حال مسادر از ها رو برایتان اصلا متعرض سلطابست هم شده ایشان و تأثیر داره این طور یه اثر باشه یه دی اثر باشه الان یه این هم یک مطلب که آیان اگر مایل بودن که بلاواد مجمعی غیر از حالا ابا کشی و خیلی از تعلیقات آرومی که بعد از شیخ آمدن این دو سه کتابی که از کردم نافعه ابتدا نوشته مرحوم سید مرتضی بعد مرحوم کراچیی بعد نوشته سید مصطفی بعد هم نوشته مرحوم مجلسی قدس الله در علم نجوم البته نجوم ها اما ایشون در اینجا مفسرم نبود این لاجه به اجمال است. مرحوم شیخ هم چند دخش کرده که اینا چند جور هست. از اول چهار قسم کرده اسم چارومش رو بیشتر شر شرح داده اسم چارومش که قائل به رفت باشه ما بین حرکات فلکی و بین تأثیراتی که در زمینه اون وقت این رفت رو به انها گرفته تا ان شاء الله بعد توضیحات میشه بعدش میخوام یه اباظه شیخ هم بخوام خودتونش مراجعه کنید خاصی نداره کلام خاصی خب ما عرض کردیم برای اینکه در مطلب بهتر واسه بشید اول به طور کلی وارد روایات بشید طبیعت دست اقتضا میکنه که از زمان رسول الله شروع بکنید تا چون شیخ روایات به هم ریخته و یک جا نه ما برای اینکه برای شماها อ่าน مراجعه راحت تر باشه عرض شد که بنا به ایشو که از کتاب وسایل رو ایار اول قرار بیدید طبعا این یک زیاداتی هست این زیادات رو فعلا از بهار مرد مراجعه قرار میدید از کتاب وسایل شروع می‌کنیم، یا باشد کنیم اول وسایل ترم میکنیم بعد روایت که در وسائل دید اینشالله توضیحات شده از یک سری افتداعا در روایات بشه بعد از روایات رو بینیم از مجموعه کلمات اصحاب حالالله مقامه همون شریف چ از کنم از کنم باب 24 از ابواب ما یک تصویبه البته به مناسبت همینجای که ایشون فرمودن ایشون در کتاب وسائل یک بابی با عنوان عباب و سفر دارد. چون به باید داره که امیمون میخواستن برن یکی در نجوم هست که این ساعت خوب نیست برای سفرشون به این مناسبت ایشون تو عباب و سفر بابی رو قرار دادن در عباب و سفر مرحوم شیخ صاحب وسائل قدسوس روح آیا مراجعه مث که اشاره کرده ابابو سفرم رو عرض کردن چون مرحوم صاحب وسائل مخاصر یه دیگه در زبا که بیارم در جای مناسب پیدا کردن توی ابابو سفر و توی باب حج اووردن مثلا کتاب و اشرا و معاشره تو حج اووردن مساله دیده جا به جای نقوی اووردن ایشون در اونجا مناسب بیارم برای سفر و حج مساله این لاجه به جایی که صاحب وسائل روایت رو آورده مجموعه یه روایتی که ما در اینجا داریم در اینجا من یک اشاره آوره انجام بدم در این با یکیش حدیث شماره یک از روایات کلیمیست در این کتبی که ما داریم انفراد کلیمیست روایت شماره دو اون هم انفراد کلیمیست روایت شماره سه اون هم به اصطلاح انفراد نیست بله روایت شماره چهار هم انفراد نیست این یک از عجایب کار این هم خیلی عجیب حالا یه اینکه که خود متون احادیس کمی عجیب و غریبی داره غیر از این جهتش کل این چهار تا روایتی رو که الان من خدمتون حرز کردم صاحب مرحوم شیخ کلیلی این انفرادش هم سرد شمینه مرحوم شیخ کلیلی این چهار روایت رو هم در کتاب روزه امرده که اینم خیلی عجیبه اینم جزه عجایبه این رو در کتاب روزه مرحومه شیخ کلین نهاره کرده چون وقتی که کلینی حدیث رو در روزه یا در اصول امرده من نسبتاً نمیخواد کنم استقرار کرده شیخ سوسی نه امرده این از که علالی که شیخ سوسی نه فکر نمی کنم اشکال کرده شیخ توسیه نیزعیف می مثلا حدیث که خیلی مشهوره شاید تعجب بکنیم خیلی مشهور از تو جرد و می شه شیخ توسی حدیث رفت نداره چون حدیث در تقیه آمده مرسله اما در کافی آمده نه مرسله اما توی اصول کافیه حدیث منبله هم شیخ توسی نهارده کنه چون دو تا حدیث دو سنت داره منبله هر دو تو اصول کافیه شیخ نداره؟ مثل چه هم... خب، ستا حدیث یک مناقشه تو کلاغونه از متون اهل سنت حدیث 63 و 9 تایی میگه خب حد این سه تا حدیث اینا از عجایب هر سه حدیث در مسائل نجومی هستند جز عجایب هستند هر حدیث از انف... بلکه چهار تا حدیث از انفرادات کلینی و در کتاب روزه آورده اینا خیلی عجیبه اصل روزه کلینی کتابی است که متفرقاتی تشکیل‌ماننده حتی اگه سر و سعی باشه یا ها عجیب قریبان یا سیما هستند متونش خالی از خرابتی نیست ایشون در اونجا آورده این هم یکی از عجایب کاره بله حدیث شماره 5 از انفرادات صدوق در خسال آورده شماره 6 اونم انفرادات صدوق در خسال آورده شماره 7 از انفرادات صدوق در خسال آورده و حدیث شماره 8 هم کذالک و شماره 9 هم کذالک از شماره 9 ایشون پیدا نکرده من اینشالا بعد عرضم کجاست در خصال شماره 10 از احتجاج مرسل شماره 11 که جز کتب فیخی آمده در نصف معتبر و تذکر و اینها آمده در شماره 12 هم که آخرین حدیثه در کتاب استخراجات سرزمین تابوس آورده، عجیب از فرق جد معمول سرزمین تابوس نیست این کل دوازده حدیثی که در وسایل آمده همین لیستی روی که اول اعتراف کرده خودش کافی است که مساله حدیث خیلی باید مشترک آورده. همین لیستی رو که از جالب تأکید داشت گردد نداره همین که دوازده تا من لیستی را که نازل این خیلی روشنی که چقدر از این احادیث به لحاظ به اصطلاح محزری مشکل داره یعنی بهتر اینه که در کافیه اون هم در روزه کافیه از این برای ما طرح شرقی روایاتی که در روزه یا اون کافی مطالعه نای گردن تذکر کرده باز ما که ایشون دو تا سه که به جو واسه که 30 میشه بهش 20 این اون احتمال داره اصلا این که بگیم شیخ مناقشه داشته، قبونه. خیلی بعیده. چه از این سازمانش عمل کرده. آ احتمال داره مسواده نبوده این مسواده. احتمال داره اما بعید به نظر ایشون چون داشتتون چهره دوزی که کتاب جامعه ننوشتن. ثقه نمیشتن. ثقه فر فرو عکاپی مقابلش نوشتن. میگه اصول مقابلش ارزش یا روزه رو من به ذهن من اینه یعنی گذینشی نیست خود دقی مسالهتون شیخ رو حساب حدیث را رو نه. من دیگه حساب داشت اشکال داشت حدیث را فکر نمیکنه این کار منه احادیث و اصول رو میشه چون حدیث را دو تا در کافی داره هر دو که اصلا تو فرو نوردن از اکثر به دیگه شیخ خیلی این به استخراج ما هم نیست این کاملا واضحه فقیه رو گاهی نعروب میکنن اصلا فقیه رو مقاید نیست کافی رو مقاید نیست اما فقیه رو مقاید نیست چون حدیثال هست مرسلا در فقیه هم موجوده در کتاب عربه در کتاب تحضیب و استفسار نیست در حصول کافی هست و در فقیه هم هست از اصلا مرسلا خب این با این لیستی که من الان از این دوازده حدیث مرحوم شیخ حرم شما دادید با همین 20 نشونه در حکم که از هم که همه اول روشی شدن چه چیه بعضی احادیث به لحاظ اعتبار و عدم اعتبار روشن شدن حالا من به خاطر بعضی از نکات فنی یه مقدار اخیری احادیث رو می‌خونم تا روشن بشه حدیث اول پس ما اول بحثمون تو احادیث قرار می‌گیم بعد بینیم بود کلمات و در ده نتیجه‌گیری نهایی که حالا شیخ مثلا این تصمیم بگیرید این جهادیس و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عدهایی از من اصحابنا عرض شو که در روزه کافی نخر شده روزه کافی رو ارکلم سابقا هم چند عرض کردم بعضی مناقشاتی هم که مال کلینی نیست اما ظاهرا ثابت نباشه چون قرائات و سماعاتی که هست روزه داخله، هست حتی ایده احکام کار ابن ابی زید من نمیفهم ولی مرادشون چیه ابن ابی زید فارامی کتاب به سبک ابن نمیخوره نه اون شرایط افس میاد میریزی تا پیشگذر میکنیم شرایط بعضی نیستن این روزه کافی مال افس میریز نبود افس میریز شد. برعکس واضح روزه مال مارون نیست اما انصافاً خوب کاری کرده است روزه باشه خیلی آحادیت عجیب و غریبه. تا اون بینن تنه شن سعی اما مزمونان خالی از غرائب نیست. مزامین عجیبه داره و ت عجیبی. واقعاً همون که گفتم کشکولمانه میه. سعی کنم برات رو در این باگ جام. من ابن احمد ابن محمد ابن خالد که این احمد ابن محمد خالده به اصطلاب برقیست که معروف اصطلاب کتاب محاسم که از تعبیر به برقی پسر میکنیم به اصطلاح در مقابل پدرش که محمد ابن خالد ابن فرزال من در کرارن عرض کردم ابن فرزال ابن در اطلاق مخصد در اینجا که کلیگی با دو واسه نرمون میکنه پدر مرازه پدر اسمش حسده حسن ابن علی ابن حضان سه تا پسر داره ایشان یکی محمده یکی احمد و یکی حسن حلی. علی و محمد و احمد. در این سه تا پسر علی از همه مشروع سره در کتاب شیخ توسی اگر جای افتدار شده به ابن حضان اوچه ابن حضان مراد این پسره این دو تا اشتباه نشنا در کافی اندل اطلاق پدره در تهذیب و استرسال، اندل اطلاق کسره همین علی علی بن ایشون جلوی جلوی ابن فضل خب انا حسن بن اسباد ما به این عنوان نداره حسن بن اسباد بگه کسی یه مراد باشه انا عبدالرحمن بن سیابه یا سیابه زرف کردن زرف نرم سیابه درست سیابه درست باشه اینم توصیه رسمی نداره اما خب فرض کن ادعی از بزرگانش نکرده نمیدونم کامل از اینجور چیزا توصیق رسمی رسی حدیث به لحاظ سندی چون ازمانسان احمد خیلی مشکل نداره بقیه ابن فضال هم که ابن فضال پدر است و سغل. وقت مثلا ممکن بگیم حسن این که مجهوله مثلا به خاطر رواهات ابن فضال قبول بکنیم عبدالرحمن رحمان ابن سیابه یا سیابه را هم به خاطر رواهات مشاهیش یا کامل ازدارات قبول یعنی یک راه های هست به قول آیان حدیث. سندش قابل اعتماده لیکن هم این راهها ها به که ما قبول نداریم نه کامل زیارت نه اون راه ها و حسنان اصبات با این راه توصیح نمیشه. که من از کردم همیشه ما بحث های فهرستی رو جنبنده جنب و بحثه رجالی داریم این ما همیشه غیر از مسئله خودسند به دنبال وضوح تاریخی و سیر تاریخی روایت هستیم این روایت رو مرهوم کلینی توسط مشایخ خودش از برقی پسر نرمی کرد این مشکل نداره برقی پسر روارش از ابن فضل پدر ثابت نیست مشکل اینجا هست اینا آمانا فقط رساقه رو حساب راسته. چون ابن فضل شواهد نشون نمیده که ایشان به قوم آمده باشه. من چند بار از سرم در هایین بحثا اینایی که رؤسا و بزرگانه مزارب. نگلو تخفیان و سترن مذاهب فاصله بودن مثل زیدی ها مثل پتری ها مثل کیسانی ها مثل واقفی ها اینها کسی از اینها به قوم نیامده بله ما در قوم از غلات داریم به استثنان غلات که اده از غلات در قوم بودن از این اصحاب مذاهب فاصله از مقوله مفضال اینها در قوم نداریم لذا آزتاً مثل این روایت باید به عکس باشه ابن فرزان به کوفه رفته باشه احمد برقی شواهد ما نشون میده که احمد برقی کوفه نرفته داره بعضی از روال از مشارق عراق خیلی برای ما روشن نیست پدر ایشان چرا پدر ایشان چون در عراق بوده در کوفه بوده پدر ایشان یکی از عوامل مهم انتقال میراث عراق به اومد. راست کردن در کل شیعه و میراث‌سر شیعه یکی از مراحل بسیار مهم انتقال میراث‌های ما از عراق به کوفه خود این میراث‌ها چه میراث‌های بغداد چه میراث‌های کوفه این میراث‌ها یا حالا مثلا شوابات مدائن ناموس بغداد اضافه بکنید این میراث‌ها بخشی ها که لازم میراثی هم دارند به قم منتقل شده راست کل به طور کلی انتقال طبیعتاً دو جوره یا از قومی ها به اراغ رفتن یا از اراغی ها به قومی ها دیگر از این در حال منام و الهامات و باشه و آمدن ابن فضلال به قوم روشن نیست رفتن احمد بربی هم به قوم روشن نیست لذا به ذهن میاد اگر نسخ غلط نباشه اگر به سلامی ذهن یاد شاید هم مجلسی مرمومه کولینی هم اشکالش این بوده اون کسی که رفته به کوفه برای کتاب کتب ابن فضال رو بقوم اونده احمد اشعریه نه احمد برگی در یک طبقه هم حسن. احمد ابن محمد نه عیسی نه احمد ابن محمد ابن خالد اینجا احمد ابن محمد ابن خالد اگر ابن عیسی بود هیچ مشکل نداشت چون قطعا ایشون کوفه رفته و با یک به قد و اسواسی زیاد میراس بق... رو به طور کلی بقومو اما ما از احمد احمد برقی این چیزی نمی پدرش هم چلو خود احمد برقی روشنی اینکه احمد برقی رفته باشه شاید سر دلی که مرحوم کلینی هم تأمل داشتید انصافا روایت خودت قاطع می کنید من عرض کردم تا یک مدتی که بحث رجاله در اصحاب بود همین بوده این سره اون سغه خب بحث سغه نیست می گوتن هم میخوره خوره خب برای هم راسته لیکن ما اضافه کردن بحث فهرستی و سیر تاریخی سیر تاریخی در اینجا نمیخوره انتجام تاریخی نداره فدارش نه چرا؟ اگر بود چرا؟ افتان شد شاید ولی ازا ما الان با این حدیث مشکل دارید همینطور به خود کلینی هم مشکل داشته این راجبی این راجب حدیثات این حدیث نظر ما مشکل کلی داره بحث این که حسن نخباط ثقه است از نمی تونه روایت ابن فضل از ایشون اونها روایت باشه و این شاکن هم وقتی که ابن فضل و عبد حسن نخباط باشه یعنی وقتی سند اولش هم گیر آخرش هم پای نهایی گیر پیدا میکنه بعد قال قلت او عبد الله بن ناس يقول ان نجوم لا يحل النظر فیها ویه توجبنی به انکان از تظه بزینی فلا حاجتی فیشه اینی ظور رو بزینی و انکان از لا تظور و بزینی فله امیل عشتی و اشتی ان نظر فی من اگر یاد دوبارک بله فقال عللسم به سک مای قولون لا تظر رو به این محل کان اون فهیه ما اینجاست لا حظر رو به دیینیک ضرر نمیزنند. س بقال ان نکن تنظورون فیشه این تنظورون به اون نظر از اینجا گرفته. فیشه این منها کسی روحو فیشه این منها من, من علمونجوب کسی روحو لا یدرک و قلیل لا لا یونتفعبه این بخش علمی روایته کسی رو لا یدرک و قلیل لا لا یونتفعبه دقیق برموید این روایتی وقت رو من یک نقطی رو گریز عرض کردم آنش را ترجم نکردم مرحوم سیمتاووس رزوان رسالاله در کتاب فرج المهموم یه روزه کمیشم رو خون کم بیمزن این کتاب فاظل ماسته از اسحام رو نام برده که اینها مثلا تعلم علمی نجوم میتردن باید تعیید مطلب که تعلمش اشکال نداره یکی از اونها عبدالرحمنم سیارو یا سیابر این رو درشت شد دقت بکنی این رو از کجا سیر جاوز گفته در کتابی نوشته نه همی رای بگیدیده خوب بزد کرد یعنی سیدن تاوست نصف شما این رو باید دیده عبدالرحمن سیابه یا سیابه گفته این یه اشتر یه یعنی انزالفی برد این یه ایشون اسم ایشان اجاز اون کسانی بوده که که کنی انزالفی و تعلمان دو جو از که دو جو یه لیستی سیدن تاوست در فرجم محمول داده که در این کتاب اگر آن بخوام خوبیش اینه که ایشون مختصره بردن این لیست به ا تعلم به نجوم کردن در این کتاب معاصر ما از کتاب به اصطلاح از مختاه الکرامه کرده اصلش مال سینتابوس در فرج محمول از مختاه الکرامه کرده وقت این اصما که اده از علمه بودن بعد گفته که سم و هن کرا علا علم الهدا سینتابوس انکار کرد چلا علم الهدا نتحقی کرده سم مذکر در تعدیه ها بل اسم اسماع جماعت من الشیعه کان و آرفین به یک ادهی از علمای شیعه این رو نیاد گرفتن یکیش سم مذکر ها دهیل اسماع اولش عبدالرحمن بسیار داری اولش هم هست خب یک کسی از سینت ها سوال میکنه شما از کجا دونی عبدالرحمنه در شهرهادش نمیشته چراهادی که نداره چی نمیشه که عبدالرحمن سیابه علاقه به نوشیم داشته دلیلی ایشون همین روایت کوریمی چون در این روایت عبدالرحمن سیابه گفته این یه اشتایی از نظر یا الله زر... رو بدین یا لا توزه رو بدین تو پس ایشون میگه که عبدالرحمن سیابه یاد داشته مزر رو هم نبوده رو سرکتا این نقطه جواب ما همیشه همینه این روایت در کتاب روزا آمده سندش مشکل داره اگر بخوایی درستی بکنی ثابت نیست این کلام بردار غیر از این خود عبداله همون سیاه و شخصیتش روشد نیست اصلا این این کلام مال عبداله همون سیاه چه شخصیتش این چی بوده اسمش؟ این در ثابت خوب بکر کنیم مثلا در هزار ساله هم هزار و ست ساله نه. این روش وجود داشت خیال نکنیم یه کسی میگفتن چون تو این روایت تو کافی آمده این خوب دقیق این روشناسی از حدش نمونده پس ارضاء رحمان من سیابه است بوده که در نظر در علوم کرده یاد گرفته امام تایف فرنده فرمان لا سوزره رو دینه اگه اینو گفتن نه این روش درست نمی‌فهمه این کلام مال ادرهمان سیابه هست یا نه این تو روزه کافی آمده خود روضه رو شای نداره خود ثنل امام داره برقی از علم فضل پدر نقلی ازتجام تاریخی نظره حسن اثبات مجبور داره وقتی بررسی می اسنادش به ابن سیابه صحیح می وقتی می گفتن می گفتن رویه رویه ابن سیابه به اسناد لمیته که اون این جور گفته که امام ساده وقتی چی گفتن اون کسانی که قبول می مثل سیدون تاووس می گفتن چون این برواید آمده این می اخبارینی کان منال اخباری، علاش طریقات ال اخباری، این طریقات ال اخباری مربی. طریقات ال اخباری. یعنی این موضوع کافی هست، پس من صمیم وارد چطوری من صمیمی میخوایم کنم که ابد راهننده سیاره. اون یکیش میگویند گفتن محسریم و کان اند آل محسری، محققی. اون میگه میگویند آها این که لکافیه هست، تو چیش اما اگه ما بذم حاضر بگوییم مثلا نتیجه می‌خواهیم از آمدن نتیجه، تکات کرد نتیجه گیری، نتیجه گیری که ابدی از بزرگانشیا ولاماشیا به نباید نجوم بوده. اول که دست نداره بودن میشه آب را که حالا اگر بعدی اگر جا بعد از نیستن نیستن بعد تا در خوب در نوشته ماهونوشه که یشان عالیه نجوم بوده. مسجدش هم روایت روزه کافی است. یعنی این, از این آقا اصفاقی، اون آرزو می‌کنیم، آرزو می‌کنیم که تا وعده تمام مسجد یک جا بر و اون دیگه ترجل معمومه سنتابوس من اعظم اصرار من روی منهج ورعش بود این کارو در یک چند اسم دیگه سنتابوس مطرح میکنی که بقیه, بقیه شو خط مورد خیلی بیشان تک الله علیه و الیه